بسم الله الرحمن الرحیم و به این و این نه الله محمد و آل و الله بحث ما درباره جایگاه حدیث در علم کلامه. خب در هفته گذشته یه مقداری علم کلام رو تعریف کردم و کردم که علم کلام یعنی علم اصول اعتقادات علم عقاید اسلامی و در هر مکتبی میتونه علم کلامی وجود داشته باشه ما هم کلام اسلامی داریم هم کلام یهودی داریم هم کلام مسیحی داریم هر مکتبی قایدتاً یک چارچوب اعتقادی داره که سعی میکنه این چارچوب اعتقادی خودش رو به یک وسیله هم اثبات بکنه حتی برای پیروان خودش علم کلام یک علم استدلالیه ولی در عین این نقلیه یعنی با استفاده از منقولات منقولات آیات و روایات سعیل میکنن که عقایدی رو اثبات بکنن و البته استدلال به منقولات برای کسی که میگه که منابعی رو قبول داره جایزه جایزه من یه مثال برای شما بزنم از خود قرآن کریم سوره مبارکه عمران میفرماید که کل تعمی کانت کانه هلا اسرائیل، الا ما حرم اسرائیلو علی نفسه قل فع تو به تورات فتلوها، ان کنتم صادقی. یه مرتبه در بني اسرائيل شایع شد که مثلا گوشت گاو حرامه. قد استناد میکردن به عمل یعقوب که یعقوب پیغمبر گوشتگاف نمیخورد حالا جریان از این قراره که حضرت یعقوب بر سبیل نظر مصرف گوشتگاف رو بر خودش یه مدتی تحریم کرده بود سلام داری کن. سلام داری در ببینید که حضرت یعقوب بر سبیل نظر مدتی برای خودشون مصرف گوشت گاو رو حسب کرده بودن که من مثلا امسال گوشت گاف نمیخورم بر سبیل نظر قرآن می‌فرماد، الا ما اسرائیل و علا نفسهی که اسرائیل لقب حضرت یعقوب از نظر شخصی اسرائیل که یعقوب باشه نسبت به خودش که بگذریم کل طعام کان هلل بنی اسرائیل و مبنای هلیت طعام ها برای یهودی ها تورات بوده دیگه تورات در تورات احکام حلال و حرام در خوراکی ها خدای تبارک و تعالی برای بنی اسرائیل بیان کرده و قرآن میگه که برای بفهمیم گاو حلاله یا گاو حرامه به یهودی هایی که مقلد یعقوبن بگید از عمل یعقوب دلیل نیارید از آیات تورات دلیل بیارید یه بحث کلامی ها که ما وقتی با یهودی بحث کنیم در ارتباط با عقایدشون میگیم دلیلتون از تورات بیارید یا میگیم که ببینید این مطلب در این جای تورات به این شکل وارد شده میخوام بگم استدلال‌های کلامی نافذه استدلال‌های کلامی معتبره برای کسی که منبع یا منابعی رو پذیرفته حالا معتقده مثلا مسیحی خب انجیل رو قبول داره یهودی تورات رو قبول داره مسلمان قرآن رو قبول داره قرآن رو قبول داره بعد شیعیان کتابهای خودشون رو قبول دارن سنیا کتابهای خودشون رو قبول دارن و در هر مرحله ای انسان میتونه با توجه به مبانی که وجود داره و منابع معتبری که وجود داره در دست پیروانی مکتب دلیل اقامه بکنه دلیل اقامه بکنه اقامه دلیل بکنه با استفاده از بعض از منقولاتی که اعتبارش برای صاحب اون نقل به اثبات رسیده برای همین مسلمان ها از همان قرن اول خب علم کلام رو بنا نهادن چون یک سری مسائلی بود که سوال برانگیز بود و معتقد بودن که در قرآن کریم یک آیاتی وجود داره ناظر بر اون سوالات. هفته بیش براتون مثال زدم مثلا جبر،, جبر و اختیار قضا و قدر اینی که ما واقعا تابع یک سرنوشت محتومی هستیم یا تابع سرنوشت محتومی نیستیم اینا بالاخر در قرآن آیاتی وجود داره که این آیات رو میمدن بهش استناد و استدلال میکردن با این حساب علم کلام اسلامی چه در حوزه کلام شیعی چه در روزه کلام سنی شکل میگیره که گاه اوقات حتی مثلا اختلافات زیادی شیعه و سنی داشتن بر حسب مشرف که داشتن الان یک اصطلاحی وجود داره ما میگیم اصول دین این اصول دین یک تعبیر کلامیه مثلا همین که ما میگیم اصول دین ستاس توحید نبوت معاد، بعد میگیم عدل و امامات هم اصول مذهبه اصول مذهب شیعه، ایرا یک تقسیم بندی های کلامیه ما مثلا در روایات اهل وی اصول دین رو به این معنا نداریم در روایات اهل ما یک بحثی داریم که حالا من در کلاسوی فقر حدیث ترح میکنم یعنی یه وقتی یک کلامی منبعث از روایات مستقیمن یه وقتی یک کلامی ممکنه منبعث از روایات نباشه ممنونم منبعث از بسیار خوب منبعث از ارز کنم خدمتتون های من از آیات و روایات باشه وقت نتیجهش متفاوت میشه امام باقر علیه السلام میفرماین که بنی الاسلام علی خمسن اسلام پنج دروح داره. ارکان پنجگانه اسلام بعد میفرماین علا و زکات و حج و صوم و بدایت ارکان پنجگانه اسلامی که نام میبرند چهار تاش اصل به اصطلاح متکلمین فروع دینه فروع دین نماز رو میگن فروع دینه زکات رو میگن فروع دینه حج میگن فروع دینه روزر میگن فروع دینه در بیان امام باقر نا هر کدام یک اصلا چون ارکان پنجگانه اسلام بعد امام باقر میفرماید که فاین رسول الله قال از و عمود و دینه کن نماز یک اصلیه یک پایه‌ایه در دین شما حالا می میگفتن که اصول پنجگانه اسلام عبارتند از توحید خب توحید خداشناسی بعد میگفتن امر به معروف و نهی از منکر بعد میگفتن منزلتون بین المنزلتین یعنی از یک تا... چیزی به نام منزلتون بین المنزلتین به یک اصل استفاده می کردن یا نام میبردن توحید رو هم میگفتند به عدلم به عنوان یک اصل نگاه میکردن بعد امر به معروف و نهی از منکری که در تقسیم بندی متکلمان شیعه یک فر از فرو دینه در تقسیم بندی متکلمان معتزلی یک اصل از اصول دیلیه میخوام بگم این برمیارده به برداشتهایی که اونا از اهمیت امر به معروف و نهی از منکر از قرآن درک کرده بودن که مثلا یک کسی ممکنه برداشتشین باشه که جهاد یک اصل از اصول مهم دینیه در کنار فرض کنید توحید و نبوت و معاد از اصلی به نام جهاد سخن میان میاره الان این ما دانو کلام داریم همونطور که دو نوع تفسیر داریم ما دو نوع کلام داریم یکی کلام های روایی کلام های یا روایی که متن حدیث پیغمبر یا امام متن حدیث پیغمبر یا امام یا مثلا آیات قرآنی اینا می شود یک باور کلامی مثلا میگیم خدا عادله و ظالم نیست میگه چرا میگیم آها خودش فرموده ان الله لا یظلم الناس شیئا و ان تکو حسنا یجزىف آها ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم يَزْلِمُونَ وقتی ما میگیم خدا عادله خدا ظالم نیست به مر آیه قرآن ما استناد میکنیم. در مورد روایات هم همینطوره خب روایات بسیار زیادی داریم که اینا ثقه اعتقادی داره اگر کسی مجموعه ای از این روایات رو جمع آوری بکنه این ارز کنم خدمتتون میشه یک کلام روایی اما کلام غیر روایی که بیشتر ما با این کلام غیر روایی سر و کار داریم و معتقدیم که آیات و روایات مادهی،, مادهی شواهدی و موادی برای تشکیل کلام غیر روایی این برمیگرده به کلام های استدلادی مثلا فرض کنید سید مرتزا میاد کتابی می به نام تنظیح الانبیا خب تنظیح الانبیا در تنظیح الانبیا به آیات قرآن استدلال شده به روایات هم استدلال شده ولی بخش های زیادی از تنظیح الاملی تحلیل های عقلی سید است. چرا؟ برای اینکه مثلا ما در قرآن کریم آیه هایی داریم که این آیات بوی ارتکاب ظلم یا گناه میده برای بعضی از پیامبران تو بیا و درستش کن اینجا دیگه متکلم زور میزنه که برای این آیات یک تفسیرهایی ارائه بده که شما ازش کاری برای پیامبران رو متوجه نمیشی مثلا در شرایطی که قرآن کریم میگه وعصا آدمو ربهو فقوا اصلا اسیان رو نسبت میده به حضرت آدم و در نتیجه گمراهی یا بیبهرگی متکلم وظیفش اینه که بگه که اون کاری که آدم کرد آیا مصداق گناه بود مصداق اسیان بود اینجا اسیان معنای حقیقی داره معنای مجازی داره علم کلام استدلالی با ادله عقلی متکلم از نوع جدیدی از تفسیر آیات یا تفسیر روایات شک میگیره. این میشه کلام استدلالی. بازم کلام استدلالی مبتنی بر آیات و روایات متحاد در کنار اون نوع تفسیر متکلم استدلال متکلم رو ما باید مشاهده بکنیم. در جلسه امروز یه مقداری من میخوام راجع به منابع روایات کلامی با شما سخن بگم. البته از منابع روایت کلامی الان چند تا کتابم سر کلاس دارم که یکی کتابی که از منزل آوردم دربارهش صحبت میکنم دوتا کتابی که گفتم از کتابخانه بیارم. و شما با بعضی از فرازهای این کتاب ها آشنا بشید. در ارتباط با ارز کنم خدمتون منابع احادیث کلامی شیعه چون ما داریم نقش حدیث رو در علم کلام خدمتون میگیم باید از منابع احادیث کلامی هم در شیعه و هم در اهل سنت یک گزارشی ولا گزارش مختصری ارائه بکنیم بعد که این گزارش رو ارائه کردیم یه نگاهی هم به این کتابایی که آوردم خدمتون خواهم انداخت ما در شیعه چندین نوع منابع احادیث کلامی داریم ابتدا اشاره می کنم به تکنگاریهایی که در زمان ائمه به وسیله اصحاب ائمه نوشته می شده یک سری هایی که اینا دیگه قدیمی ترین منابع احادیث کلامی بودند این تک متأسفانه ها متاسفانه تا زمان ما باقی نمونده و به اصطلاح وجود تاریخی دارن نه وجود خارجی چون گاهی بعضی از آثار تا زمان ما دیگه وجود خارجیشون دیده نمیشه تا زمان ما باقی نموندن که من بیارم مثلا سرکلاست نشونتون بدم بگم این کتاب بر مبنای روایات کلامی تو قرن دوبوم نوشته شد اما وقتی که دانشمندان موسقی که فهرس نویس بودن و موضوع کتاب شیعه یا سنی رو در و کتاب رو با موضوعش معرفی میکردن به ما میگن که مثلا در قرن دوم زرارهی بوده که این زراره کتابی داشته به نام الاستطاعت و در مفهوم استطاعت انسان در این کتاب مطالبی آورده بوده خب ما باور می کنیم که مثلا کتابی به نام الاسططاعت وجود داشته و این کتاب هم یک کتابی بوده که احادیث مربوط به استطاعت رو جمع آوری کرده اگر سال بکنید خب به چه دلیل کتاب الاسططاعت محتوای حدیثی داشته میگیم که تا پایان قرن چهارم اصولا علوم اسلامی ماهیت حدیثی داشته یعنی مثلا اگر کسی کتابی بنسه به نام نفی و تشبیه در مورد پروردگار عالم ایشون روایاتی رو جمع آوری میکنه که بوی نفی تشبیه میده مردم از خودشون خیلی حرف نمیزده الان این کتاب رجال نجاشی رو که من خواهش کردم که آوردم یه منبعی برای که ما با تکنگاری های متنوع شیعه در قرنهای اول تا چهارم آشنا بشیم که نجاشی در بسیاری از موارد یک معلفی رو معرفی میکنه و کتابی رو به اون نسبت میده تا جایی که ممکن باشه از کنم خدمتون موضوع کتابش رو برای ما روشن میکنه که حالا من سعی میکنم به عنوان نمونه یک مواردی رو اگر بشه همینطوری سرسبر یعنی به سرعت پیدا بکنم و برای شما بخونم که من یه مقداری تعمل دارم چون معمولا کتاب ها رو که معرفی کرده فقط گفته مثلا لحو کتابون دارم دنبالم مواردی میگردم که موضوع کتاب رو هم حت می‌کنم گفته باشه که الان چون چیز خاصی رو نامزد نکردم یه مقداری باید بگردم که یکی دو مورد رو پیدا بکنم براتون بگم انشاءالله که الان پیدا بشه براتون خواهم گفت آها ببینید مثلا شخصیست به نام سعد ابن عبی عبدالله عشعری خوبیشون از بزرگان قوم بودن در قرن سوم هجری اولا کتابی داره به نام بسائر و درجات. کتاب بصائر الدرجات خوشبختانه تا زمان ما باقی مونده که این بصائر الدرجات فیال محمد هست احادیث کلامی حوزه امامت رو به میزان زیادی در بر داره حالا علاوه بر کتاب بسایر الدرجات ایشون یه تعداد کتاب دارن در موضوعات گوناگون فقهی که میگه که سن نفه سعدون کتبا کسیره وقع ایلینا منهو کتبا الرحمه کتاب البزوگ کتاب از صلاح کتاب از زکات کتاب از سام کتاب الحج کتبهو فی مارباهو منبایو وافق و خمسه تو کتاب که پنش کتاب رو میگه بعد میگه که کتاب و فرق شیعه کتاب عرضت علال غلاط به این کتاب ارد علال غلاط این, این, این که یک کسی یک کتاب می نویسه رد رد می کنه رو در رد غلات کتاب می نویسه این یک کتاب کلامیه موضوع عرضت و الغلات یه موضوع کلامیه علتش اینی که در قرب دوم و سوم خب یک جمعیتی پیدا میشن که ما به این جمعیت میگیم قالی قالیان قالیان غلو میکردن در شعونات ائمه و مثلا در علم غیب ائمه میزان علم غیب ائمه حالا شیعه معتقد است که ائمه علم غیب دارند اما میزان علم غیب ائمه چقدره آیا غیبشون مطلقه آیا غیبشون نسبیه آیا غیبشون به شرایطه اینا بحث‌های کلامیه این که مثلا واقعا آیا انسان میتونه رب بشه انسان میتونه الوه بشه چون بعضی از قولات الوهیت رو به ائمه نسبت میدادن یا ربوبیت رو به ائمه نسبت میدادن که البته اینا تمامش با اعتقادات یک شیعه امامی معتدل قاعدتا متفاوت بوده یعنی شیعیان از یه حدی تجاوز نمیکردن چون اگر تجاوز میکردن شدن غالی و ایشون بانوان شیعه کتابی داره به نام رد و علالغلات که این کتاب یک کتاب کلامی بوده یا مثلا فرض بفرمایید اینجا نوشته کتاب رد علی ابن ابراهیم ابن هاشم فی معنا هشام و یونس. دو تا از اصحاب امام کازم و امام رضا یکی هشام ابن حکمه یکی یونس ابن عبدالرحمنه. بعد یونس یک عقایدی داشته هشام یک عقایدی داشته از سنخه برداشت‌های کلامی خب این آقای سعد ابی عب... عبد الله برای کتابی نوشته داوری بین هشام و یونس اینا نمونه از این کتاب‌هایی که کتاب کلامیه مثلا کتاب الاستطاعه کتاب احتجاج شیعه علاءالدین ابن ثابت فلفراص البته این کتاب یه فقهیه ولی حتی گاهی کتاب‌های فقهی میتونه خاص کلامی داشته باشه چطور یک کتاب فقهی میتونه خواستگاه کلامی داشته باشه ببینید کتاب تهذیب الاحکام شیخ طوسی رو در نظر بگیرید یه کتاب فقهی دیگه از کتاب اربعه است دیگه تحضیب الاحکام این کتاب روایات فقهیه ولی با یک مسلحت کلامی نوشته شده چگونه با یک مسلحت کلامی نوشته شده؟ مقدمه تحضیب الاحکام شیخ توسی رو مطالعه کنید ایشون در مقدمه تحضیب الاحکام نوشته از دیرباز باز یعنی ست سال پیش دیلیست سال پیش مخالفان ما که وقتی میگه مخالفان ما من اهل سنت هم. شیخ خطوسی هم تو بغداد بوده بغداد کانون اجتماع شیعه و سنی بوده میگه از دیرباز مخالفان ما بر ما تعن وارد میکردن اشکال وارد میکردند. که شما احادیثتون گرفتار اختلافه شما احادیثتون گرفتار چیه اختلافه این واقعا اشکالی بوده که متوجه شیعه بوده تو بغداد از ناحیه اهل سنت بعد میگه من این کتاب رو نوشتم به قصد به قصد حل اختلاف روایا و حل قصد تعارضات روایی هدف شیخ توسی بوده که چی بشه میگه مخالفان ما به دلیل اینکه روایات ما گرفتار اختلاف به ابطال مذهب ما رو می یعنی سنی ها به دلیل اینکه روایات شیعه گرفتار اختلافه میگن با اصلا مذهب شیعه از اساس بادله میگه به ابتال مذهب ما حکم میکنن بعد حالا آرمان شیخ توسی اینی که یک کتاب بیبینسته به نام تحضیب العکام که اختلافات حدیث رو حل بکنه به امید این که نظر اهل سنت یه خورده متعادل بشه. دیگه اونا به ابتال مذهب شیعه حکم نکنن یعنی گاه میشه یک کتابی احادیث فقهی داره اما خاص خواست، خاصگاهی کلامی داره تعلیفش خاصگاه کلامی داره برای همین هم اینجا میگه که احتجاج شیعه علی زید بن ثابت زید ثابت از اصحاب پیغمبره و درباره زید بن ثابت معروفه که میگفتن زیدن اعلم الناس بالفرائض یا اعلم الناس بالفرائض فرائز یعنی احکام ارث چون در آیات ارث یه فریزتون من الله فریزتون من الله میگن که در اصحاب پیغمبر اون کسی که به احکام ارث مسلط است همه بوده از آن گفتن اون کسی که مسلط تر بوده زیده نسابته حالا اینجا یک کتاب فقهی نوشته شده با روی کرده کلون چون هدفش اثبات برتری شیعه برزیده ثابت تو مسائل مربوط به عرصه. الان ای حالم مثلا کتاب مناقب شیعه یه کتاب کلامیه که بعد میگه که این کتاب ها را همه ما به دستو بردیم. در دورانی که همه چیز با استفاده از روایات نوشته میشود. حالا یه چند دقیقه من تنفس میدم که این شان الله نماز رو بخونید بعد بر بعدی کارمون رو ادامه دهید ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستئین و اینه خیر و ناصر المؤین و صلی اللہ علی سیدنا محمد و عالی تا خب آرزوی قبولی تاعاد و شما رو داریم انشالله و به کلام خودمونو در معرفی منابع کلامی مخصوصا منابعی که مبتنی بر روایات کلامی ادامه میدم من گفتم که یه بخش از آثاری که مال غره های است یک تکنگاری که در موضوعات خاص علمای ما نوشتند که معمولا با استفاده از آیات و روایات نوشتن اکثر این تکنگاری ها تا زمان ما وجود خارجی نداره برای فهرس نویسای معتبر برای ما بعض از این معلفین رو نام میبرند و حتی به موضوع کتاباشون اشاره میکنم من فقط برای که یک نمونه دقیقتری رو برای شما گفته باشم در این کتاب رجاله نجاشی از شماره 1034 به بعدش مثلا 1033 به بعد بعضی از این مؤلفین رو فقط نام میبرم به سرعت از این قسمت میگذرم مثلا درباره باره محمد ابن خلف ابو بکر رازی نوشته متکلمون اصلا بنوان متکلم وصفش میکنه جلیل من اصحابنا له کتابون فل امامه یا مثلا درباره محمد ابن القاسم به شماره ده و پنج میگه ابوبکر بکر بغدادی متکلمون آسرم ابن حمام لهو کتاب فل غیبه کلام یک کتابی در شو اگر یک کسی بخواد در غیبت کتابی بنویسه غیبت امام زمان حتما باید یا با آیات قرآن استناد کنه یا با اخبار و روایاتی که بر طول سن امام زمان یا تولد او دلالت میکنه یا مثلا عرض کنم خدمتتون به شخصی به نام محمد بن بشت الحمدونی ابو حسین میگه متکلمون جید کلام صحیح الاعتقاد کان یقول و بلوئید این که میگه کان یقول و این یک اعتقاد کلامیه و این میخواد به ما بگه که این شیعه متکلمه ولی یک کمی یک کمی تمایل به معتزله داره چرا؟ چون ساعتی پیش برای شما گفتم که معتزله یک اصولی دارن در اعتقادات خودشون یکی از اصلهای دینی معتزله اصل وعد و ویده وعد و وید معتزله معتقد بودن همونطور که های خدا قاطعه مثلا خداوند وعده داده دیگه که و بشر لزین آمن و عمیل و صالحات انالهم جناتون تجریمن تحت الانهار ربنا و آتنا ما و عتنا علا رسوله و یوم القیامت همونطور که وعده خدا قاتعه و تخلف بردار نیست وعیدهای های خدا قاتعه وعیدهای خدا قاطع. یعنی خدا اگر گفته الا من كسب سيئا وعاهاط بهي خطيئته فاولئك اصحاب نار یه تهدید دیگه وعید یعنی تهدید معتقد بودن همونطور که وعده قاطعه وعید هم قاطعه شما نه نکن... از مفاهیمی مثل عفو الهی رحمت الهی شفاعت الهی مثلا شفاعت بندگان هی hey, مایه بیزدید که مجرمین بخشیده بشن نه دیگه توعرف نداریم وعد قاطعه و هم قاطعه ای که میگه و کانه یقول و بلوعید معناش اینه یعنی این یک تفکر کلامیه و میگه که این یک کمی تمایل داشت به معتزله بعد میگه لحو کتبون منها کتابو المقنع فل امامه المنقذ فل امامه دوتا کتاب در موضوع امامت به ایشون نسبت میده یا مثلا به شماره ده سی هشت نوشته که محمد ابن احمد ابن محمد ابن حارس که وچون من اصحابنا لهو کتاب و نوادر و علم القرآن و کتاب الامامه به همین ترتیب جلوتر که میاییم مثلا به شماره ده چلوسه محمد ابن ابراهیم ابن جعفر که ایشون معروف هستند به ابن زینب یکی از اولین کتا... کسایی که در مسئله غیبت امام زمان کتاب نوشته علاوه بر اون لحو کتب منها کتاب الغیب، که گفتم کتاب الفرائز که فقهیه. کتاب رد علی اسماییلیه چرا؟ چون به در یه مخته مبتلا شد به یک جریان انهرافی که عبارت از اسماعیلیه بودن اسماعیلیه برای امامت اسماعیل ابن جعفر یه روایاتی جلد کرده بودن ایشون کتابی منس رد اسماعیلیه با استناد به روایت های که مقام امامت رو برای بن جعفر اثبات میکرده الان از این نمونه تکنگاری ها خیلی زیاده که من تا همینجا فیلن بسنده میکنم چون وقتم محدوده و میخوام مطالب مهمتری رو برای شما عرض کنم ببینید من هفته گذشته از کتاب الاعتقاد و تسهیح الاعتقاد شیخ صدوق و شیخ مفید صحبت کردم الان کتاب این کتابی که شما ببینید جامعه هر دوه یعنی یه بخشیه اولش یه بخش اولش نوشته شیخ صدوق به نام اعتقادات صدوق مثلا الاعتقاد فی التقیه الاعتقاد فی نفی القلوب و الاعتقاد الاعتقادو فی الانبیاء و رسل و الهجج مثلا قال الشیخ اعتقادنا. فالانبیاء و الرسل و الحجج انهم افضل من الملائکه این یه عقیده کلامیه عقیده کلامی هم باید اثبات بشه دیگه یعنی یا باید با آیات اثبات بشه یا باید با روایات اثبات بشه خب ایشون اماده دلیل قرآنیشو آورده گفته دلیل قرآنیش اینه که خدا به ملائکه گفت که عرشبت در شما خبر بدید از یک سری اسما اونو گفتن ما نمیدونید. گوه که نمیدونید بیفتید به سجده آیات قرآن رو آورده قال الله تعالی و علم آدم الاسماع کلها سمعرز هم الملایکه میگه که وقتی ملایکه به سجده در پیشگاه آدم فهذا کلهو یوجب و تفضیل تفضیل آدم ادم علالملائکہ و هو نبی لهم. خوب اما و قال النبي انا افضل من جبریل و میکائیل و اسرافیل و من جميع الملائکه و من حملت العرش و انا خير البريه. دقت یعنی برای اینکه بگی که از نظر از نظر ماشیایان پیامبران افضل از ملائکه هم دلیل قرآنی میاره هم دلیل روایی میاره چون اصلا علم کلام ابتناش بر قرآن و روایات حالا جالبه که بین برداشتهای کلامی شیخ صدوق از مفاهیم اعتقادی و برداشتهای کلامی شیخ مفید از همان مفاهیم اعتقادی گاهی اختلاف ما اختلاف متکلمان رو داریم این برمیگرده به اینی که یک متکلمی به بعض از روایات اعتماد میکنه اما متکلم دیگری میاد به اون روایت اعتماد نمیکنه این میشه دو دوتا عقیده یک کلامی این کتاب تصحیب و اعتقادات امامیه. اعتقادات و لئمان مال شیخ صدوقه به تصحیب که میرسه میشه مال شیخ مفید و اکثر جاهایی که شیخ مفید یک اشکالاتی به شیخ صدوق میگیره میگه عقیده شیخ صدوق تو این مسئله خاص بر یک خبر واحد استواره خبر واحد که علم نمیاره برای یعنی باز لق کردن بعضی از روایات میتونه بعضی از عقاید رو بالا پایین بکنه اقد مسئله عدیس در شکلگیری علم کلام و اختلافات کلامی متکلمان میتونه اثر باشه که ما برای اینکه این دوتا رو یعنی عقاید شیخ صدو و عقاید شیخ مفید رو بررسی کنیم اختلافات کلامی دوتا متکلم یا ناشی از اختلاف برداشتشون از قرآه یا ناشی از اختلاف اعتماد اونا بر پایه بعضی از روایاته ال ا حالا این قسمت دوم به معنایی میشه گفت که نقد آراء کلامی شیخ ا کنم خدمتون. صدوقه. مثلا فرض کنید نوشته فصلون فلوه و قال قالش ابو جعفر رحمه الله اعتقاد اونا فلوه و انهما ملکان عقیده ما اینه که اگر در وضع از آیات در وضع از مفاهیم تعبیری داریم به نام قلم مثلا نون و القلم و یا مثلا فلوه خب عقیده ما اینی که لوه و قلم در ادبیات دینی دو دوتو فرشتن شیخ مفید میگه که ارز کنم قالش شیخ المفید اللوح کتاب الله تعالی کتب فیه ما یکونو اله یوم القیامه و هوا قولی تعالی و او ولقد كتب نافذ زبور من بعد ذکر ان الارزه غير صحه عباديه الصالحون فلوحه هو الذكر بل قلمه هو الشيء الذي احدث الله به الكتابه كتابه في اللوح وجعل اللوحه اصلا ليا ليعرف الملائكه منهم ما يكون من غيبا او بعيا فإذا اراد الله تعالى أن یطلع على ملائكه على غيب الله او يرسلهم الى الانبياء بذلك امرهم بالاطلاع في لوح فحفظوا منهم ما يؤدونوا او من ارسلو به یعنی قبول نداره که لوح و قلم خودش دو تا ملک باشه ميگه نه لوح میتونه اشاره به یک کتابی باشه که در این کتاب علومیه و وقتی خدای تبارک و تعالی میخواد ملاکهای ای رو مثل برای پیامبری به او اجازه میده که در لوح نگاه بکنه علومی رو برداره و این علوم رو نازل بکنه به یک ملائکه بعد میگه که فَأَمَّا فا من زَهَبَ اِلَا أَنَّ اللَّوَهَ والقلم ملکان فَقَدْ ابعد بِذَالِكْ وَنَّهَ عَيَبْهِ عَنِ الحق ازِل ملائکتو لا تُسَمَّا الْوَاهَنْ ولا عقلامن ولا يعرف في لغت اسم مدكن ولا بشر لوح ولا قلم یعنی اینجا دیگه کاملا شیخ صدوق رو تخطئه میکنه و عقیده او رو باطل میکنه میگه ما در نه در لغت کتاب لغت میتونیم لو و قلم رو به معنای دو فرشته بدونیم و نه در شواهد دیگر خب مثلا فرض بفرمایید قال الشیخ ابو جعفر اعتقاد اونا فی الارش انهو حملتو الخلق والعرش فی وچ آخرن هوال علمه قال الشیخ ابو عبدالله المفید الارشو فی اللغته هوال الملك بعد میه قال شاعر و بزالیک خلاصه این نقطه به نقطه یک اعتقادی رو از شیخ صدوق روایت نقل میکنه بعد میاد این عقیده رو نقد میکنه با برداشت هایی که خودش از آیات داره از روایات داره از منابع دیگه داره خب این جز برحال مدارکی بود که من باید معرفی میکردم که یه مقداری عقاید دوتا متکلم رو بر برداشت های برآنی و روایت روایش رو در اختیار ما قرار میده من هفته گذشته از شیخ صدوق اگر یادتون باشه از عمالیش و مجلس 93 شم سخند بمیان آوردن در اینجا بد نیست که از کتاب دیگری از شیخ صدوق یاد کنم که کتابیه به نام اله هدایه". این کتابی که به نام اله ایشون نوشته تا این تا این جای کتاب این قسمت از کتاب در حقیقت شیخ صدوق شناسیه و آثار شیخ صدوق و شخصیت شیخ صدوق بله بله تحقیق به اصطلاح اون مؤسسه‌ای که این کتاب رو چاپ کرده که شیخ صدوق رو از جنبه‌های گوناگون آثارش، اساتیدش، مسافرتاش، رؤوسی از عقایدش همه رو برای ما معرفی می‌کنه خودش منبعی 230 صفحه‌ام هست این شیخ صدوق شناسیه بعد برسیم به الهدايه الهدايه چیه الهدايه در واقع یک کتاب مختصری از شیخ صدوقه که یک شمعه از جهان بینی شیخ صدوق و شمعه دیگری از اون مبانی یا مکتب فقیه شیخ صدوق رو به ما نمایش میده با تحقیق‌هایی که محققین روی این کتاب به عمل آوردن که الان من نشونتون میدم ما میتونیم جایگاه حدیث رو هم در تفکر کلامی شیخ صدوق ببینیم هم در علم فقه هشهیشو صدوق ببینیم یه هایی از الهدایی کلامیه مثلا نگاه کنی آغازش میگه که باب توحید باب توحید و خاله جالبه من حالا عباراتی که میخونم شما متوجه میشید یه جاهای آیات رو تضمین کرده یک جایی روایات رو تزمین کرده میدونید معنای تزمین آیه یا تزمین حدیث چیه؟ معنای تزمین آیه یا تزمین حدیث اینه که یک کسی مثلا بگه که اعتقاد اعتقادنا انالله واحدون لم یلد و لم یلد خب این لم یلد و لم یلد چیه؟ قرآن دیگه اما نمیگه کما قال الله لم یک بلم یعنی سخن خدا رو در داخل عبارت پردازی خودش به آریه گرفته به این در اسطلاح میگم تضمین. تضمین یعنی نصر عرض کنم خدمتتون اه... کتاب الهدایه در قسمت کلامی و در قسمت فقهی اینه الان من یه مطلبی براتون میخونم میگه قال الشیخ الجلیل ابو جعفر محمد ابن علی ابن حسین مابوی قمی مصنف از این کتاب یجب ان او واجب است که این اعتقاد به دست بیاد ان الله تبارک و تعالی واحد لیس کمثل هیچ شی شما به من بگید لیس کمثل هیچ چیه یا های قرآن دیگه به این نهو سخن گفتن میگن تضمین تضمینگری نسبت به آیات و بایاد لا یو حدو ولا حسو ولا جسو ولا یو مستو ولا یدرک و والابصار ولا افسار ولا ولا نوم شما من بگید لا تأخذ و حسنتون ولا نوم رو از کجا فر؟ پیدا کرده. از قرآن دیه. حالا با اجازهتون اون لا حس و لایو جسو و لایو رکوب الاوهام و الابصار اینا احادیث امام صادق عليه السلامه. بعد اتفاقی که افتاده اینه که مثلا میگه راجع الکافی یک نبوده پیدا بابل فی رؤیا مثلا میگی که ولا كل كل شیش علم الله و در و به اوهاه و افسار بالا تقل سر تو اللا نو شاهد و کلد نجوا مثلا شاهد و کل و نجوا ششقال لا تا حالا الان تراند و الله یرم و مااف سماات و وافل ا و مایقولوم نجوا صل صح الله و رابع اوهم یا مثل میگی که انطور الکافی جلد یک صفحه سسی و توهی والفری، و فرام و فلان یعنی الان تحقیق هایی که روی این جملات شیخ صدوق اتفاق افتاده به ما حس محسوس میکنه این حسو به ما میده که چطور علم کنام یه ریشه هایی در آیات و در روایات داره و به عبارتی نقش حدیث رو در شکل علم کنام به ما یادآور میشه لا یوسف مثلا محيط به شيء خب ان الله على كل شيء محيط كان الله محيتا لا به بجسمن ولا صورتها ولا جوهره ولا آرزا ولا سکونه ولا حرکته ولا سعوده ولا غوطة ولا قيام ولا قوده ولا سقله ولا خفته ولا جیعته ولا زهابه ولا مکان ولا زمان ولا طول ولا عرض البته این اصطلاحات اصطلاحاتی که خودش داریم نیسته مثلا اما وقتی که میگه و نهول لم یزل ولا یزال سمیعن بصیرن حکیما علیما این اوصاف رو دیه از آیات قرآن کریم یاد گرفته حیم قیومن قدوسن عزیزا احدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وانه شيء ليس كمثله شيء خارج من الحدين حد و وحد التشويب خب، خوب حالا دقت سرواي شيخ صدوق برای اینکه این, که این انهو شیقون لیسک هم مثلی ای شیق آیه قرآنه بعد میگه خداوند خارجون من خارج حده خدا از دو حد خارجه حد دل افتال و حد دل تشوی شیخ صدقبره که بتونه این حرف تو این آلم بزنه یک حدیثی از امام جواد رو دیده اون حدیث اینه بگیدیم سوئله ابو جعفر علیه السلام که منظورت امام جواده یجوزو ان یقاد دلال انهو شعهیه یه باره یکی از سوال کنه از امام جواد آیا جایز از ما لفظ شیع رو برای خدا استعمال کنه خدا را شیءی بدانیم، یا جزء لیل لله قالل الله علاو شای، قال نه. هزرت بعد. شما میتونید لفظ شیء رو برای خدا استعمال کنید. اگر لفظ شیء رو برای خدا استعمال کنید، یخوره جو میل حد حدایی. اون عنوان کرمن رفض شریع برای خدا خدا را از دو تا نسبت ناربا خارج میکنه حد تعتیل و حد تشبی حد تعطیل و حد تشبیل خب حد چیه؟ حد تشبیل چی چیه؟ ایدار من توضیحات شد در کتاب شناف حدیث دادم بعضیتون هم با من فکر یا الان در حال گذروندن هستیم خارجون منال حد حد افتال. این اقتال همی تعدیده و حد خب، شما نگاه کنید چار فی صورت آیه 180 آیه الاسران آیه 11 دردیم حالا بید الکافی از اینا خواستگاه روایی و موانی روایی این جنگه شیخ صدوبه خود عزی بهتر دیگه اینطوری در کنی نحشه که گاهی تضمین میکنه کنه گاهی مفهوم میگیره دیره با کل شاید لا اله الا رو لا دلو بل افسار و هو بل افسار با حوال وفیت و خیلیت کما قال الله تعالی بلی آیه های قرآن رو هنرمندانه در قباره که خودش دفاع می‌برید که بگید دیگن تغلیمین با اندر جلالا جداد منهیون اند لنهو یادی ایرام مالاییدی خوبه خب خالب می‌بینید وقت سوئله انو قوله، فقط سوئله صادق ان قول اللهی از وجل نگاهی هم برای اینکه که یه لطافتی بده به اعتبادات کلامی خودش یک دونه حدیثم هم میاره ها میگه از امام صادق راجع به این آیه سوال شد انه ایلا رب میکرد منطقه یعنی چی؟ قارع زنیم تر کرام الالله عز وجل فهمیسه وقتی بحث رسید ذات خدا، بایستید و روی هم علی که افر انه او فی خلاق الله وَلَا كَتَكَلَّمُ فِلَّا فَإِنَّ الْكَلَامَ فِلَّاهِ عَزَوَجَمْ لَا يَزْدِدُ وَإِلَّا تَحَيْرًا بعد عرض خدمتون این تو با توحیده و با نبوبه یجب با انن نبوبته حق کن کما اعتقده انن حق کن و اندر انبیاء به الله معت الف و عربت و عشق اونه پس کجا فهمیدی که تعداد پیامبران صد هزار، صد و بیست هزار تاست؟ یه حدیثی دیده، و به این حدیث اعتماد کرده تمام که تو قسمت تحریقاتش دوشته، تو بهار، اعتمالات، فقید، فسال روایتش هست بچگوزه این تحریقاتو خودش میکنه؟ نه این تحریقات، تحریقات این مؤسس هست یعنی این معسسه ای که معسسه ای ار ایمان خالفیه اومده این مدنه رساله شیخ سبوره در قدر فهموییم مثلا و انا قولهم قول الله و امرهم امر الله و قاعتهم دعوت الله و معصیتهم معصیت الله و اینا هم لن یا لم یا تقوه الله و ان اللہ، اینا، اینا حرفای شیخ صدوبه اما این حرفا جمعه به جمعهش یا از آیات داره یا از روایات یعنی کلام قیر از این نمی تواند باشد باز مثلا راجعه حضرت پیغمبر صحبت میکنه که یا بعد با حالت معلکت را امین میشه به ادامه ی قوانه میشه و ماهیت اسلام و ایمان رو توضیح ده از اسلام رو اقرار رو به شهادت این و هون من از یک قنون به دماغ و دماغ رو به این شنده ایمان صادقه که در تفاوت اسلام و ایمان میگه که اسلام اونیه که به تو امنیت میده اگر قسم مسلمان باشه مالش و خونش در امان یک قروب تماف مثلا مثل اینجا دو کافی اما ایمان شیه و ایمان رو همه احرارن باللسان اقرارون بالعقد و اقرارون این سخن مولا امیر المؤمنین در مطرور بلا است که میفرماید الایمان ال ایمان رو و, سلا و, سلا و ایمان و حالا جالبه امثال شیخ صدوق اونا محترم به سرغت علمی هم نمی جنا این نتیش که سبک این بوده در قرنهای اولیه بعضی از کتاب‌های کلامی بعضی از کتاب‌های فقه این سبکش این بوده که طرف آیه رو میدیده روایت رو میدیده در داخل عوارات خودش برحار می بعد در جلسات درس باز میکرده همینطور که الان من دارم برای شما باز میکنم یا هم که محققین اومدن برای جمعه به جنبه این صحبت کردن میگه و کل ممن مسلم و کل مسلمت مؤمن هر مؤمنی مسلمان هست ولی هر مسلمان ضرورتاً مؤمن نیست و مثلا اگر مثلا کعبه و مسجد، فمن دخل الكعبه فقط دخل المسجد، بلیس کل من دخل المسجد دخل الكعبه و لا این تشبیه امام صادقه. که امام صادق می‌فرماید: مسل مؤمن مسل کعبه است. مسل مسلم و مسلمان مسل مسجد حرامه. هر کس داخل کرده باشه ضرورتاً داخل مسئول حرام هست ولی هر کس داخل مسئول حرام باشه معلوم اسپیکر براشده ده این عین محلسات و تشبیه امام صادقه هم این تحقیقاته میگه این ای مطلب بهار تو, تو کافی تو معامل اخباره با یک اختلاف اندکی یعنی این کتاب که شما ببینید که در حوزه مسائل کلامی این همین ماجراتو و فقه هم هست یعنی من میخوام شما بگم نقشه حدیث در فقه نقشه حدیث در کلام میگم که رو ببینید به پاور بیاش رو نگاه کنید از این طرف مطرحش مفتش کنید از طرف چی؟ به پاور بیاش از این بهتر دیگه میتونم نقشه حدیث در فقه و کلام رو توضیح بدم. خب. اما غیر از این آثاری که آوردم که اصلا به قول مرون مسئله حسی بشه حسش کنید من از چند تا کتاب روایات کلامی نام میبرم یکی عرض شود عبواب روایات کلامی جوامه حدیثیه الان ما در کتاب الکافی کتاب تحید داریم کتاب الود چه داریم؟ چه کتاب الایمان والکفر داریم؟ به اینا میگن فصولهای روایات کلامی جوامع حدیثی. عین ای اینا رو ما تو صحیح بخاری داریم، تو سعی مسلم داریم، تو سنن ترمزی داریم. به نسبت مسائل کلامی اهل سنت و مسائل کلامی شیعه پس فصله های احادیس کلامی جوامع اولیه خب کتاب های احادیس کلامی با موضوعات مستقل با موضوعات مستقل مثلا در آثار شیخ صدوق ما کتاب توحید داریم میخواییم بینش شیعه رو در مسائل خدا شناسی متوجه بشید کتاب و شیخ صدو یا کمال و دین و تمام و نعمه. که این در مسئله قیبت اثبات قیبت امام زمان یا راز عمر طولانی امام زمان کمان که شیخ توسی شیخ توسی اده‌ی زیادی کتاب غیبه دارن نوع امانی کتاب غیبه داره شیخ مفید کتاب غیبه داره شیخ توسیب کتاب غیبه داره خودش شیخ صدوق کتاب غیبه داره ببینید در اطلاع کتاب غیبه یه فصل از جوابه حقیسی بوده مثل کافی اما بعدن کتاب های مستقل هم زد به خاطره که مسائلش خیلی بوده بود اویون و اخبار رزا واسمی شیخه صدوق که س صفحه اولین کتاب های کلامیه با استناد در روایات بعدش وارد روایاتی میشه که سیره و امامت امام رو در اختیار ما قرار میده خب اینم مرحله دوم از اینی که روایات کلامی ما در قالبی که فهمانی مستقلی تقدیم شده تا ما به جوانه احادیث کلامی توی گوز جوانه احادیث کلامی الو، الان می‌اندونم الان می‌اندونم خواهی شو یه خورده وقتمون تمام شده آقای فقیزان منتظر منتظر اومده نداریم اثبات و نهودات بن خصوص ود شیخ آمی. و شیخ غره آمه هزار حدیس یعنی نوشتن کتاب های کلامی محتمی وقت یعنی دادن نحش حدیث در علم کلام سر از اینجا می که یک, یک کتاب نوسته نام اسم داد یعنی اثبات مقامات عینه. به نصوصه و موجزات در پرتب نصوص و موجزاتی که ازشون صادر شده یک جامعه رواییه با احادث کلامی با 22000 ایست ما در کتاب های حدیثمون یک رشته کتاب داریم تحت انوام ال احتجاجات مثلا احتجاج پبرسی نه، پبرسی معمولاً ترفوز یا کتاب احتجاجات به تمام کتابهایی که با عنوان احتجاج و احتجاجات نوشته میشه جایگاه حدیث رو در علم کلام بمانه شده ولیشون دیگه که بخش مهمی از احتجاجاتی که در شیعه یا سنی وجود داره اینا برمبنای روایاته خواستگاه روایشون ما برداریم فرو بگیزن اصلا که حدیث از دستش بگیری دیگه نمیتونه استدلال بکنه منتها هر نمی به حدیثی استدار میکنه که با یک مبانی اون حدیث رو و روی رویکرد جدلی و احتجاجی زمانی که تو برای اثبات عقیده کلامی خودت به احادیسی استناد میکنی که مخالفان تو در کتاب ها اگردن مثلا المراجعات شرف الدین علامه‌ی امین اینا میاد عقاید کلامی رو اثبات میکنه با استفاده از روایاتی که طرف مقابل در کتاب داشته داره مسئله احتجاجات یا می‌کرد به احتجاجی از اینجا به دست میاد که تا عقیده کلامی خودت رو اثبات میکنی. و در اثباتش از روایات و استداله استفاده کنید که طرف مقابل تو در کتابهاش آورده خب حال برای امشب امیدوارم که توانسته باشم نقشه نقش حدیث رو در حوزه علم کلام مبرهن کرده باشم حسی کرده باشم با بعض از لیمونه هایی که از منزل آبادیم یا از کتاب گرفتیم انشالله ما هفته آینده یه بحث جدیدی رو باز میکنیم برای که حالا نقش حدیث در علم اخلاق یا یکی دیگر از علوم اسلامی باشه.